بسم الله الرحمن الرحيم السجع شهار السجع شهار مين آرائيه أدبي أز محصنات لف لفظي سجحاس السجع السجع هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير بفرمائد ك سج يعني موافقت دو فاصله یا به عبارت دیگر دو کلمه‌ای که در آخر دو فقره هستند در آخر پاراگراف هستند نفرن زمانی که در نصر باشه در شعر نه در شعر آخر مصره دیگه آخر هر دو مصره پس میگه توافق دو کلمه‌ای که در آخر دو پاراگراف هستن در آخر دو جمله هستن از نصر توافق در تي في الحرف الأخير در حرفه آخري. آخري وهو ثلاثة أنواعين والساجع برسنو هست يك ألف مطرف ساجع مطرف چه زمان مطرف هست ان اختلف الفاصلتان في الوزن اگر ان كلمه كلمة دروازن با هم دیگه چی داشتند فرق داشتند اگر اون دو کلمه دروازن با هم چی داشتند فرق داشتند اش متعرف میگن ماننده الانسانو و آدابه لا بزیه و ثیابه آداب و ثیاب آداب و ثیاب می بینیم که آخرشون بهی اه آبهی بهی سیابهی در این حروف با هم مشترکن ولی وزنشون یکی نیست وزنشون یکی نیست این آدابه اون سیابه بله پس آداب و سیاب آخرین حروفشون یکیست ولی وزن یکی نيست بس اينو گند متطرف ومتوازن اين اتفقتا فيه وبش متوازي ميگند زماني كي دروازني دروازني كي باشند دروازني تي باشند نحو ما ننده المرء بعلمه وادابه المرء بعلمه و أدبه لا بحسبه و نصبه أدب و نصب أدب و نصب أدب و نصب هم واضح شو هستن يعني؟ خبه واضح لن آخر شو نيكي هست يعني؟ فس بشميان متواضح اینا شدن متوازی اینا شدن چی متوازی البته متوازن که با نون نوشته بشه چیزی دیگه هست نوعی دیگه هست اصلا اینجا آورده این متوازی هست متوازن با تنوین باطی در اصل متوازیون هست که می میشه متوازن مثل رامیون که میشه را من بله بس یک مطرف دو متوازی سه مرصع همون ترسیع همون چی؟ ترسیع این اتفقت الفاظ الفقرتين او اکثرها في الوزن و التقفیه زمان مرصع هست؟ زمانی که الفاظ دو فقره یا اکثر الفاظ در وزن و در قافیه با هم دیگه چی باشند؟ این حرفای آخر هم یکی باشه وزنشون هم okay. یکی باشه اکثر الفاظ مانند یطبئ الاسجاعة, الاسجاعه بجواهری لفظه ببین همین مصرع رو بگیر مصرع بعدی رو زیرش بنویس یطبئ الاسجاعه بجواهری لفظه یقرئ الاسماء بزواجر وعضه دیدی یا طبعو با یقرعو الاسجا با الاسبا به با به زواجر لفظه با وعظه اینا چی شدند؟ هم وزن شدند قافیه هم یکیه پس اینو میکن مرسح اینو میگن چی؟ یعنی میسازد سجه ها رو با لفظ جواهر گونهش یا به جواهر لفظش و میکوبد گوش ها را به نه کننده پندش به پندهای نه کنندهش اش پس پسج حال شد پنج القلب پنجمین آرایه از محسنات لفظی قلب هست قلب دیگه کدامه ما لا یستحیل بالان کاس اون که تغییر نمیکنه با برعکس کردن تهم بیای اونو برعکس بکنی تغییر نمیکنه خودش معنی کرده ان المسمى بما لا يستحيل ای لا يتغير بالانكاس یعنی تغییر نمیکنه با برعکس خوندن اینو میگن قلب القلب و یسمى القلب قلب نامیده میشه مالا يستحيل بالانكاس و یسمى القلب هو کون اللفظ یقرأ تردن و aksan اونی هست که خونده می شود یا بودن لفظ گونه ای که با ترد و اکس تغییر نکند تردن معنیش کرده یعنی از اولش بخونی به آخر اکسا یعنی از آخرش بخونی به اول یعنی چه از اولش بخونی بری به آخر چه از آخر بخونی بیای به اول این فرق نمی کنه معننده چی؟ کن که ما امکانک. حالا برا اکسش بخون. نکن. عیب آبا. کن که ما میشه دوباره. شد. جمله رو بخو کلمه رو تغییر نده جمله رو از آخر شروع کن. یه کلمه لفظ نوشید کلم جمله یه کلم لف یوقره لف چپ تر دمون یه عکس هنچه کان لف یادت. از من زمان. چی تو بیارش اینجا جمله رو جمله رو از آخر الان بخون به اول نگفته که یک کلمه کن کما امکنک دوباره الان از آخر شعور کن از امکنک کن کما امکنک درست دیگه همین قلب از اول جمله رو بخونی کن کما امکنک از آخرش هم بخون برعکس رو میشه کن کما امکنک کجای کاری تو دیدیش <تصفيق> عزیزه من اینجا نگاه کن کن کما ام کنک حالا کن کما ام کنک متعجی شدی؟ اینو میگن <تصفيق> خیر است یا مثالی در قرآن اومده وربک فکبر حرفا مهمه وربک فکبر و حالا از آخر بخون به اول تشود ربك فكبر ربك هل فهمتوا وجهه شو دي أرايرو خبرين جلوت أرى شيش العكس شيش أراي عكس عكسه هو أن يقدم جزء في الكلام على الآخر ثم يعكس نحو قوله نحو قولك قول الإمام إمام القول حر الكلام كلام الحر عكس اینه که مقدم بشه جزئی در کلام بر دیگری جزئی بر کلا از کلام بر دیگری مقدم بشه سپس برعکس بشه ماننده قول الامام اینو خوندیم اینو الان برعکس کن قول الامام میشه امام القول قول الامامی امام القولی جمله کامله ولی ما میبینیم که جزء بعدی رو موقعی که جزء اولو برعکس برعكس قول الامام امام القول و توجیه شدی یا نیم برکت کتاب التوزیب دام؟ توجه قول الامام امام القول الام. بله. خوب. فد براسکن امام القول قول الامام. یا نه؟ نه نه. دی انجا دقتش کن. یا گله امام ال اما قول الامام. اینو برعکس کن. چی میشه؟ امام, امام خب دیدی؟ آخرش جمله همینه حالا حر کلام بر عکسش کن کلام اله اینو میگن آرایه عکس مقدم میشه جزئی در کلام بر آخرش سپس بر عکس بشه باننده قول الامام امام القول حر الکلام کلام الحر قول الامام قول امام امام قول است قول امام امام قول آزاده سخن سخن آزاده است آزاده سخن به سخن سخن آزاده بله سخن آزاد سخن شخص آزاد است سخن شخص آزاد هست. آزاده است بله كلام حر، سخنة أزاده، سخنة أزاده أست، سخنة أزاده است سخنة أزاده، يعني سخني أزاده، سخنة شخص الإنسان أزاده است هفت التشريع، التشريع هو بناء البيت على قافيتين بحيث إذا سقط بعضه كان الباقي شعرا مفيدا. آقا تشریع اینه که بیت بر دو قافیه بنا بشه بیت بر چند قافیه بنا بشه دو زمانی که قسمتی از اون شعر ساقط بشه یعنی قسمتی از اونو ما بکنیم باز هم اون باقی مانده شعر مفیدی باشه به هم نخوره شعر به هم مثل یا ایها الملك الذي عمل وراء این یک اسرائيل ما في کرامی له نظیرون ينظر لو كان مثلك لو كان مثلك آخر, آخر آخر في أصلنا ما كان في الدنيا فقير معصر إن جاء ما إن جريد رسكني يا أيها الملك الذي ما في الكرام له نظير لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير يا فقير خب اینجا میبینیم که شعر به هم نخورد چون بله نظیر فقیر یونظر و معصر یونظر و رو کن چیش کن؟ یونظر و معصر بازم شعر به هم نخورد اه... پادشاهی که همه را در گرفته است نیست در کرامت او را نزیر و همانندی که نگریسته شود اگر بمانند تو شخصی دیگر در عصر ما می بود در دنیا فقیر و تنگدستی وجود نه. نداشت خب امه یعنی در برگرفتن ورای مخلوقات نه بحثیت یعنی قافیت که خب قافیه این کلمات آخر رو میگن ناظر یعنی ینظرو فقیر و موسر دو تا قافیه داره ها دیگه یا اولونو شروع کنیم یا قافیه اشاره قافیه نه نه ببین اینا چندین نمونه شعر داریم دار ما چندین خود این اشعار خیلی بحث طولانی داره روز بحث بال باله باله فانه یصح ان تحذف اواخر الشطور الشطور الاربعه صحیحه که های اربعه یعنی از هر مصره اینا دو بیتند که چار مصره داره از چهار شطر آخرش کلماتی حسب بشه و این باقی بمونه یا ایوه الملك الذي لذی ما بال خودش دیگه آورده پس تشریح این بود معاربه چه کدومی که؟ معاربه اینه که هیا ان یجعل المتکلم کلامه بحیثو یمکنهو ان یغیر معناهو بی تحریف او تصحیف او غيرهما ما ليسلم من المؤاخذه. كقول ابي نواس. نواز موارب اینه گوینده سخنش رو بگونهی بگوید که بتونه اونو با تحریف کردن و تصحیف کردن تغییر بده معنیش رو تا بتونه از مؤاخذه خودشو نجات بده مثل این شعر ابو نواس شعر رو بگونه گفته بود بعدن که اون خلیفه اومد گرفتش که ماخذش بکنه گفت نه شعر من در اصل اینجوری بوده یه حرف رو تغییر داد یه حرف چی کار کرد؟ خلا بیا اینجا لقد ضاع شعر شعری على بابی کن کما دعا اقدون على خالصه شعر من بر دروازه شما زایه شد الکیش سروده بودن چیزی گیره با نیومد. همان همانطور که زیورالات و بر کنیز خالصه الکی یک کنیز خلیسیاهی بود یک بالی ایک از این خلفا بود زیورالات برش می که خیلی خلیسیاهی بود میگه این من بر درواز شما به تواهی رفت همانطور که این بستن زیورالات بر خالصه الکیه چیزی چیه؟ این هم با این همه زشتیش تو هر چقدر اینو زیورالت ببندی ای نداره. خب، دعا یعنی از بین رفتن حالا این شعر موقعی که به اون خلیفه رسید موقعی که بهش رسید عصبانی شد فلما انکر علیه الرشید و ذال قاله لم اقول الله وقتی که انکار کرد رشید این شعر و بر اون شاعر چرا اینجوری گفتی؟ قا قاله در جواب گفت لم اقل الا گفت من اینجوری گفتم که لقد ضاء با نبوده با حمزه بوده داعه روشن شدن داعه یعنی تباه شدن گفت که من اینجوری گفتم لقد ضاء شعری علابا بکن کما ضاء اقدون علا خالصه بر براستی که درخشید شهر من بر دروازه تان همانطور که درخشید گردن بند بر کنیزک خالصه خالصه اسم کنیزه بود بله اینو پس میگن که معاربه یعنی طرف بتونه با تغییر یک حرفی با تغییر و کلمهی خودشو چکار بکنه؟ نجات بده نهمین و آخرین آرایه لفظی اعتلاف لفظ معلف لفظ با لفظ اعتلاف لفظ با؟ لفظ یعنی الفاظ با هم دیگه سازگاری داشته باشند هو کون و الفاظ العبارت من وعدن و واحدن فی الغراب اعتلاف لفظ با لفظ اینه که الفاظ اون عبارت از یک وادی باشند آه؟ از یک خانواده باشند از چه نظر؟ فلغرابت و التعهل از نظر غریب بودن و معنوس بودن از نظر غریب بودن و معنوس بودن <تصفيق> یعنی اگر اون کلمه غریبه اونی که دیگه چه کار کنه؟ غریب غریبش بکنی اگر معنوسه معنوس البته فقط بحث غرابت و معنوس بودن نیست هم خانی های دیگه هم میتونه باشه چون اونجا هم دیگه لفظ با لفظ اعتلاف داره دیگه خب كقوله تعالى تالله تفاء تذكر يوسف سوغان به الله همواره يوسف رو یاد می‌کنی اینجا میگه لما اتى بتاء التي هي اغرب حروف القسم اتى بتفاء التي هي اغرب افعال الاستماع موقعی که در سوگند حرف تا رو آورد که از غریبترین ترین الفاظ سوگنده چون تالله دیگه معمولا سوگند نمیخورن بعد از اون در تفتعو ها؟ که از افعال استمراره تفتعو رو آورد که از افعال غریبشه شه از افعال چی شه؟ نه. کم کار بردشه. شه بله پس این شد تا اینجای کار محسنات لفظی به فضل الله تعالی تموم شد الله خاتمه رو بإذن الله تمام خواهیم كرده ان شا الله مرم بحث بعد.